سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی، تذکیه نفس، با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیه مسلام جلسه دوم الحمدلله رب العالمین، السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاصی ما بقیت الله فی الارزین <تصفيق> اللهم انت السلام و من که سلام و لکه سلام و علی که السلام سبحان ربك رب رب لحظت اما يصفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین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 السلام علی الحسن و حسین سید شباب احل الجنہ اجمعین السلام علی علي بن حسین زین الابدین السلام علی محمد ابن علی باقر علم نبیین السلام علی جعفر ابن محمد صادق السلام علی موسی بن جعفر کازم السلام علی علي بن موسی رضا السلام على محمد ابن علي الجباد، السلام على علی ابن محمد الهادي السلام علیه الحسن ابن علي الزکی الاسکری، السلام علیه ابن الحسن الغائم الحمد. و تعالی في كتابه اسم الله الرحمن الرحیم و نفس و ما فالحمها فجورها و قد افله من زكاها و خاب من دستاها خب با توجه به آیات شریفه و نفس و ما سبواها تعلحمها فجورها و تقواها قد افلح من زكاها و قد خواب من دستاها جلسه گذشته عرض کردم که این ایام ماه مبارک ماه خودسازی و تزکیه نفس و تحذیب خیشتن هست از قرآن و روایات ائمه خدا علیهم السلام درس اخلاق بیاموزیم من کوچکتر از آنم که بحث موعظه و اخلاق داشته باشم فقط به با عنوان یک زبط سوت گوشتی که مطالب اون بزرگواران رو ذخپ کنم و پس بدم از این باب ارزم کنم وگرنه من نیاز به موعزه دارم و اخلاق بشنوم اما از باب گفت و شنود و مناظره و مباحثه ارزم کنم انسان به جهت داشتن نفس تمام این ارزشهای اخلاقی برای او مطرح می‌شود اگر ما نفس انسانی نداشتیم اخلاق کمال روحانی رشد معنوی و تعالی انسانی مطلقا مطرح نبود اگر میبینیم انسان‌ها به جایی می‌رسند که فرشتگان بر آنها حسرت می‌برند و انبیا و اولیا آمده ان. تا به ما ها خبر بدهند و راهش رو هم بشناسانند و دست ما را بگیرند تا برسانند به اون قله رفیع انسانیت همه و همه برای این است که ما دارای نفس هستیم خداوند در این قرآن در سوره این سوره مبارکه که برای شما می نویسند پس از این همه قسم به خورشید و ماه و درخشندگیش شب و روز و آثارش آسمان و زمین و خصوصیاتش تا به این نفس انسانی این چیست؟ یعنی اگر شما مزرعهای رو در نظر بگیرید کانالکشی میکنید از سرچشمه آب رو به مزرعه میآورید. مزرعه رو شخ میکنید بذر می افشانید باغبان رو کنار این بذر قرار میدید تمام و تمام برای اینکه این درختی که رویدافت اون ثمره درخت که میوه یا گل است آشکار گردد خداوند در این آیات شریفه اشارتی دارد برای اینکه ابر و باد و مه و خرشید و فلک آسمان و زمین و خرشید و محتاب شب و روز و همه این امکانات برای این است که درخت وجود انسان میوه انسانیت را آشکار کند این جهان همچون درخت است ای کرام ما برو چون میوه های نیمخام اگر درخت رو در نظر گرفتی میوه ای که بر شاخه درخت است، خامه کال، نارسه این رو به عنوان یک چیز ارزنده در مجلس ارزنده ها قرار نمیدهند. و اگر میوه کال رو کندن یا میوه کال در اثر یک حادثه ای از شاخ جدا شد نهایت در استبل خوراک حیواناته چون رسیده نیست پخته نیست که به درد انسان بخوره اما میوه رسیده را در اختیار ارزندهها قرار میدهند این جهان همچون درخت دسته ای کرام ما برو چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مرشاخ را زن که در خانی نشاید کاخ را میوه های کال و نارست سخت به این شاخه چسبیده کندن و جدا شدنش مشکله و اگر این میوه کال بود خام بود مر نشاید کاخ را در اون مجالس ارزنده و مفیدهای ارزنده قرار نمیگیرد انسان که میوه این عالم است سمره مخلوقات در این عالم این انسان است اگر بر اثر نفسی که دارد با اون تکاملی که باید برسد نرسد به مانند میوه کال و خامی که لیاقت مجلس انبیا و اولیا و شرکت در کلاس درس امیرالمؤمنین در فردای قیامت را ندارد خامها را که در کاخها جان میدهند به معنای واقعی کلمش همه و همه برمیگردد به این حرف که اگر ما نفس داریم تعالی این نفس تکامل این نفس و ترقی و رشد این نفس چگونه است بر چه اساس، به چه کیفیت یکی از بزرگان که خدایش بیامرزد زد مرحوم آیت الله هاشیخ محمد تقی آمولی که قدیمی ترهای مجلس هم ایشان رو دیده بودند و هم میشنناختند که می شناسن. مرد عجیبی بوده. ایشان این تشبیه رو در این زمینه دارند تشبیه زیبایی است میفرمایند اگر راکب از مرکب پیاده شد. اون خصائص و ویژگی هایی که در آن موقع پیاده شدن با خودش دارد، امکان جدا کردن هست یا نه روح و نفس راکب مرکب تن است در لحظه جدایی روح از بدن یعنی مرگ با اون خصوصیاتی که نفس ما از بدن جدا شد با همون خصوصیت محشور می گردد. یعنی 50 سال 60 سال 80 سال ما در این دنیا زندگی کردیم این همه دعا برای ختم به خیر شدن و عاقبت امور به خیر تبدیل شدن اینجا معلوم میشه یعنی چه <تصفح> اون لحظه جدایی جان روح و نفس از بدن ما چه حالتی دارد قرق شکم است غرق مادیات است تعلق به عالم خاک دارد یا وابسته به اولیا شده است عشق و حب الهی در او قرار گرفته طبق اون خصوصیتی که لحظه زیاد شدن راکب نفس از مرکب تن پیدا میکند با او برای عالم قیامت حاضر میشود لذا میگویند به مرده تلغین کنید القا کنید موقع جن دادن بگویند لا اله الا الله موقع جان دادن شهادتین بر زبان آورند و کسانی که در طول عمرشون غرق تعلقات مادی هستند یا آخر عمر خداینا کرده فریفته جنبه‌های مادی میشوند، اون لحظه جدایی روح و نفس از بدن اون تعلقات به گونه ای جلوگر می شود که با این خصوصیت از دنیا می و کتی که با این خصوصیت از دنیا رفته اقتضای رتبه نفسانیش این است که فردای قیامت درجه او و رتبه او و مقام او و همنشینان او به اقتضای اون درجه معلوم می شود پس توجه به نفس تزکیه نفس اون جلسه عرض کردم تزکیه <تصفح> این کلمه رشد و نمو را میرساند لازمه رشد نفس پاکسازی نفس از آلودگی ها سوالاتی شد که لازم است به این سوالات در ارتباط با همین بحث من اشاره ای داشته باشم میگوین نفس روح قلب آیا اینها تفاوت دارند یا یک چیزند اگر تفاوت دارند فرقشون در کجاست اگر تفاوت ندارن یک چیزه چرا میگن نفس و روح و قلب و ها کذا ما روایاتی که از معصومین علیه السلام داریم مثلا حسن الخلق للبدن خوندم براتون و حسن الخلق لنفس اینجا خلقیات رو در رابطه با نفس مطرح میکنه آیه قرآن کریم و نفس و ما سواها قد اصل همن زکاها سلاح و رستگاری رو در تزکیه نفس معرفی می کند در سوره قاف آیه سیاه هفت این نفیزا لکل ذکرا لمن کان لهو قلب تذکر است عامل پند است لمن برای کسانی که کان لهو قلب قلب دارند اینجا قلب رو مطرح میکنه حدیث امام کاظم علیه السلام در مستدرک الوسائل ال زمان علم لک ما دلک صلاح قلبک و اظهر فساده لازم ترین علوم برای شما اون علمی است که آنچه به صلاح قلب شماست به شما بشناساند و آنچه که باعث فساد قلب شماست به شما نشون بدهد این قلب چیه این نفس چیه؟ نفخت و فیه من روحی که عن الروح قل الروح من امر ربی تفسیر برهان امیر المؤمنین زیل آیه شریفه سمعن شعناه و خلقن آخر فرمود ای نفخت و من روحی اینا رو بذاریم کناره هم چه میگن؟ بزرگان فرمودن نفس تابع، قلب روح سر خفی اخفا هفت نام از یک دید برای یک چیزه از دیدهای مختلف فرق میکنه از یک نظر قلب و نفس و روح و سر و خفی و اخباب و از یک نظر یه چیزه طبعه ما اون ذات هستی ما نفس ما حقیقت وجود ما روح ما حقیقت هستی ما قلب ما لب هستی ما سر ما اون باطن و عمق وجود ما خفیق ما اون چه که در دنیای درون بر مبنای حقیقت هستی پنهان شده اخفا از او پنهان تر این یک چیز بیشتر نیست او چیست و نفخت فیه من روحی یسالونه که الروح روح قول روح من امر ربی همه مربوط به اون بعده ارزنده وجود انسانه که یک جنبه داریم ما تن بدن جسم این انافر مادی و یک جنبه داریم روح جان روان که اون بعده اصلی وجود ما انسان هاست بر این اساس گفتن آدمی زاده ترفه معجب نیست و سرشته سرشته و حیوان گر رود سوی این شود پس از این و رووت سوی آن شود به از آن آدمی زاده طرف معجون است. این انسان، یک معجون عجیبی یه به هم آمیخته و ترکیب شده خاصی است و سرشته و حیوان. اون جنبه فرشته و سرشت عالم بالایی همون روح و نفس و جان و قلب و دل انسانی است. و اون جنبه حیوانی جنبه شهوانی و خاکی و تعلقات مادی و به تعبیری وابستگی بدنی ماست گر روت سوی این شود پس از این پستر اگر رفت رو جنبه حیوانیتش پستر از حیوان میشه اولای که کل انعام بله هم ازل و روت سوی آن اگر با اون جنبه فرشتی بره شود به از آن از فرشتام بالاتر خواهد شد که حدیث امیر المؤمنین علیه السلام, و السلام در جلد یاددهی ووسائل و شیعه. ان الله تبارک و تعالا لما خلق خلوه اراد ان عاکو ببخشید اشتباه خوندم. ان الله ح تبارک و تعالا رکب الملائک عقلا بلا شهوة و البهائم البهایم بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیه فمن غلبه عقله شهوته فهو خير من الملائکه و من غلبه شهوتهو اقلهو فهو شر من البهایم این همینو انسان حیوان فقط شهوت فرشته فقط عقل انسان عقل و شهوت عقل قلبه یابد بر شهوت از فرشته بالاتر است شهوت قلبه بیابد بر عقل از حیوان پستر است اون بعد روحانی رحمانی الهی ربانی مافوق این عالم که خدا به ما داده است اینو به یک لحاظ میگن نفس و روح و قلب و طب و سر و خفی و اخفا اما از یک دقت تخصصی که بعدی نگاه کردم میگن نه تفاوت داره فرق داره فرقش در چیه؟ میگن روح مال عالم ماوراست هیچ وابستگی به عالم ماده ندارد خلق الارواح قبل الاجسان به الفیعام ای بر این مبنم نفس روح وابسته شده و متعلق به بدنه اگر بخوایم اینجوری دقیق بشیم پس روح اونی که مربوط به عالم خلقت قبل از ما است خلق الارواح قبل الاجساد به الفیام من امر ربدی و هاکزو اما وقتی خداوند این بدن را می آفریند نطفه و علقه و مزقه و ازامه کسونل ازامه لحمه سمه انشعناه و خلقن آخر به فرموده امیر نفخت و من روحی یعنی از اون وجود مقدم بر وجود ماده که خلق الارواح قبل الاشتاد به این بدن تعلق وابستگی و معیت ایجاد میکند. این وابستگی رو بهش میگن نفس یعنی روح روح است اما وقتی میگم روح من روح شما روح ایشان روح من غیر از روح شما چون متعلق به منه روح شما غیر از روح منه متعلق به شماست این روح وابسته شده را میگویند نفس وقتی روح وابسته شد به بدن چرا نفس است چون فرقش با روح این است این دیگه وابسته به ماده شد تو عالم ماده قرار گرفت حال میتواند همه حرفها اینجاست. حال می تواند در این عالم ماده به کمک همون وجود روحانی خودش ماده را در اختیار بگیرد ابزار خود کند برای حرکت به همون عالم بالایی که در او قرار داشت. و اگر وابسته به این عالم ماده شد اون وجود ارزنده در استخدام این وجود مادون درآمد این سقوط است تذعفل همن زکا نفسی که در عالم ماده گول ماده را نمی خورد ماده را استفاده میکند غلام همت آنم که زیر چرخ کبود چون چه رنگ تعلق پذیرد است آزاد است خود را آزاد میکند حرکت میکند که ان الله در شب 19 و 21 با استدلال اگر زنده بودم عرض خواهم کرد این آزادی حاصل نمی شود مگر اون که ما زندانیان عالم ماده از پشت نرده های این عالم ماده چشم امیدمون را به اون ملکوتیان یعنی علی و آل علی که از عالم بالا اومدن دست ما را بگیرن این نرده مادیت زندان دنیا را ببرن و ما رو پرواز کنن به این جهت میگم کیست مولا اون که آزادت کند بندرقیت زبایت برکند زین سبب پیغمبره با اجتهاد نام خود و اون علی مولانه ها بحثش رو خواهم کرد انشاءالله ما در این عالم ماده که قرار گرفتیم قد افلا من زکاها این تذکیه برای کسی است که گول عالم ماده را نخورد تو زندان ماده زندانی نمند عامل پرواز خودشو فراهم کرد وقد خواب من دفساها اما اون بیچاره ای که این قدرت عظیم الهی ملکوتی عالم بالا خدا بهش داده میاره در اینجا گیر مینداده پس نفس رو اینجا اجمالا فرقش معلوم شد حالا قلب یا دل اون فرقش با نفس چیه عقل قلب عقل به معنی عامل تمیز دادن شما الان مگید بنده میگم این دیوار به خودی خود ساخته شده نه معماری داشته نه مهندسی داشته نه کارگری بوده همین جوری اومده بالا شما چرا قبول نمی آقا می نخیر من از نحوه کیده شدن و نقاشی و کیفیت بنا میتونم بگم مهندسش در چه سطحی بوده معمارش در چه سطحی بوده عامل تمیز بین صحت گفته بنده آقا چی هست؟ عقله یه نیروی شما دارید اون نیرو رو میارید حکم میکنید میگید ما میگوییم آثار نشانه مؤثر است چگونگی آثار دلیل بر چگونگی موثره نحوه این دیوار میتواند نحوه مهندسی مهندس اینجا عقل تمیز میده همونطوری که اگر بنده بگویم یه لیوان آب ترشه یا شیرینه تلخه یا شوره، داق یا سرد عامل تمیز چیه حسه شما حسو به کار میبرید تمیز میگید که چیه پس عقل یک عامل شناخت و تمیز دادن اموری نسبت به اموری در محدوده مستقلات عقلیه نه مثل اشائره هستیم که بگوییم حسن قبع عقلی نداریم نه مثل براحمه هستیم که بگیم وحی نمیخوایم همه چیزو عقل میفهم نه در محدوده مستقلات عقلیه عقل قوه تمیزه دل اونم قوه تمیزه ولی چگونه قوه تمیز؟ مگه هست قوه تمیز نیست حس قوه تمیز در حد محسوسات عقل قوه تمیز در مستقلات عقلیه دل قوه تمیز در شهود در دیدن یعنی دلو مثل آینه بگیرید که وقتی در مقابل امور قرار میگیرد در خودش منعکس میکنه انشالله شبای قدر خواهم گفت یک آینه گاهی پنج مشکل پیدا میکنه ازش رو بحثشو بحثش رو میذارم اون شبها یک جیوه آینه میریزه دیگه آینه نیست در چه زمانی قلب ما دیگه آینه نیست قصی بشه بحثش رو میکنم انشالله. دو جیوه داره قصی نیست غبار گرفته این گرتقبار معصیته وقتی معصیت دور دل ما رو گرفت این آینه نمیتونه دیگه خودش چیزی رو منعکس کنه سه گاهی وقتی ما به آینه دل نگاه میکنیم ممکنه گرت و که روی این آینه دل نشسته است، اگر دقیق بشیم آینه گرتو و ندارد جیوه هم داره ولی پشت کرده به اون چیزی که باید نگاه کنه مثلا میخوام آینه رو بگیریم رو به حسینیه آینه گرفتیم پشت به حسینیه آینه دل ما رو به چی قرار داره این باز یک بحثیست چهار گاهی ما آینه رو در مسیری که قرار میدیم گرس و قباری که روش نفوذ پیدا کرده این گرس و قبار از حد ظاهری به عمقش رسیده ما روش ای داریم پرده میزنیم مثل توبه از گناهان به صورت سطحی ولی ریشه ای نشسته ایم قلب گاهی اینجوری در اون نفوذ میکنه پنج میخوایم مثلا پشت سرمون رو ببینیم آینه رو گرفتیم جلومون ما نمیتونیم پشت سرمون رو ببینیم یا آینه با باید پشت سر این آینه به کمک اون آینه منعکس کنه آینه دل باید در مقابله در مقابل نور اولیای الهی قرار بگیره تا منعکس کنه حالا این دل با نفس این عقل با نفس چه فرقی میکنه این حس با نفس چه فرقی میکنه همون نفس است یه بعد شناختی حسیش به کمک ابزار حسی رو میگیم حس همون نفس است به کمک ابزار عقلی میگیم عقل به کمک ابزار شهود غلبی میگیم دل و از این دید دل و غلب به معنی فعاد یه قسمتی از یک تجلی نفسه عقل یک تجلی نفسه حس هم یک تجلی نفسه نفس یک مجموع... با... بالاتر ایست که اینا زیر مجموعشن. از شبنم عشق خاک آدم گل شد بس فتنه و شور در جهان حاصل شد سرنشتر عشق بر رگ روح زدن یک قطره چکید از آن و نامش دل شد اگر ما از این دید نگاه کنیم سرنشتر عشق بر رگ روح زدن یک قطره چکیز از آن و نامش دل شد دل یک قطره تراب روحه عقل یک سعای نورانی نفس و روحه حس هم یکی از این هاست. حالا همه برمیگرده به یک عامل غویت یه به نام نفس یا به نام روح حالا این نفس و روح با این بدن چجوریه یه تمثیلی رو که در لابلای کتابهای اخلاقی شعری زیاد اومده ارزو کنم بعد روایت از امام صادق و امیر علیهما سلام بخانم که بحث تذکیه نفس از دید اون بزرگواران چگونه است؟ تمثیلی دارن برخی میگوین مجنون آشق و شیفته لیلی بود میخواست بره خانه لیلی این تمثیله نه مجنون و نه لیلی واقعیت خارجی نداره تمثیله چون وقتی میخوان نحوه نفوذ خوب دلبستگی رو نشون بدن شما دعایی دارید مناجاتی دارید اللهم اینی اسألو که خدایا از تو میخوام ایمانی را که با قلب من انتو باشر قلبی با قلب من مباشرت داشته باش این مباشرت یعنی چی خوب دقت بفرمایید باز مثالی از یکی از بزرگان این مثال رو من از اون بزرگ دیدم میگه شما می‌خواید کیک سیب رو مربا کنید یه زمان این سیب‌ها رو واش کردید یه در شکر روش پوشیدید زودم هم برداشتید چه مقدار شیرینی شکر به این سیب اثر کرده سطحی دو تا زبان زدیلی ها میره بعد بخواش سیب رو گاز بزنید دیگه شیرین نیست اما میخواید این سیب رو مربا کنید با شکر میجوشونید هی تو این شکراب که میجوشه این سیب میره بالا میاد پایی میره بالا میاد پایی تمام ذرات وجود سیب با این شکر عجین میشه از اون به بعد که میگید مربا هرچه این سیب رو گاز بزنید با چیه؟ باز شیرینه قلب ما با ایمان به خدا اینجوریست یک زمان این که امام علیه السلام تو مناجاتش داره به ما یاد میده اللهم اینی اسألو که خدایا از تو مسئلت دارم میخوام ایمانی را که تو باشه مباشرت با قلب من پیدا کرده باشه این ایمان یعنی چی؟ یعنی در کمام ذرات قلب من و دل من عشق تو محبت تو نشسته باشه اینا را گاهی میان در قالب زکت اشعار یا تو، اشعاریات و مثالها مثال میدنن لیلی و مجنون مثلا چون عالم عالم مثال عالم مادده چاره ندارن در مثال مناقشه نیست نه اینکه حالا اون حب به پروردگار رو ما بخوایم با عشق لیلی مجنون مثال بزنیم اینو در یه حدی برای تمس تشبیه تقریب ذهن تشبیه میکنن می ببینید مجنون میخواد بره خانه لیلی کمان علاقه و نظرش لیلی شطوری دارد این شطور در طویله است و بچه ای در طویله داره تمام علاقش به اینه که تو طویله پیش بچش باشه پس دو میل است یک میل میل مجنونه به خانه لیلی برود یک میل میل شطور است در طویله باشد و پیش بچش مجنون میل خود را بر میل شطور غلبه داد شطور از طویله کشید بیرون روز سوار شد انامش رو به دست گرفت به سمت خانه لیلی شروع کرد حرکت کردن پس این که الان شطور در مسیر میل مجنون حرکت میکند چرا چون میل مجنون بر میل شطور غلبه یافت او در اختیار مجنون قرار گرفت یه مقدار راه رو طی کرد مجنون حواسش پرت شد انان شطور از دستش رها شد شطور حس کرد که مهار نمیشود میل خودش را بر میل مجنون غلبه داد راهش را برگردون کج کرد به سمت طویله و بچه خودش یه زمان مجنون به خود آمد دید در طویله و پیش بچه شطوره گفت نمی شود اگر بخواهم در طویله نباشم در خانه مجنون... لیلی باشم باید چطور از طویله بکشم بیرون در اختیار من باشه باز شطور را در اختیار گرفت گفت اگر من در اختیار شطر باشم در قبیل هم اگر شطر در اختیار من باشد سر از خانه لیلی در می آبرم. باز بار دوم حواسش فرد شد شطر مسیرشو عوض کرد باز مجنون دید در قبیل است. همچون مجنون در تنازو با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هور ما دو همره همره نالایقیم جنبندی میکنم ما نمیتونیم همراه باشیم تو من میبری تویله من میخوام تو با من میای بریم خونه لیلی یا باید رهات کنم یا اگر تو رو باید داشته باشم با تو در اختیار من باشی نه من در اختیار تو این مجنون نفس من و شماست لیلی خداست نفس خدا رو میخواد یا تو هن نفس المطمئن نه ارجعی الارب مرزیه به راضیت هم به چی خوش میکنید اما این شطور یعنی مرکب راکب نفسه میخواد در خانه لیلی به سوی خدا حرکت کنه فمن یرجو لقاء عرب بهی فلیعمل عملا صالحا اون کس که لقاء عرب را میخواهد سر از خانه لیلی درآورد. او عمل صالح داره و حرکت به سوی او میکنه اما شطور و مرکب تن طویله شکم طویله شهوت طویله مادیات و اگر این شطور تن که وابسته به شکم و شهوت است بر نفس من غلبه کرد من در طویله مادیاتم مرا به خانه اولیای حق راه نمیدهم و اگر این شطورتن در اختیار این مجنون راکب در آمد هم نشین اولیا هم نشین سلمان و ابوذر و مقداد می شود دیشب توی جلسه خودمونی با بعضی دوستا عرض کردم مرحوم سید حسین کوکمرهی عموی مرحوم آیت الله حجت که ایشون از فقها و علمای بزرگ حوزه نجف در صد و خرده سال قبل بوده در شراحال ایشون همه نوشتن و نقل کرده. مرحوم شیخ انصاری که از بزرگترین فقهای دنیای شیعه است و کتاب رسائل و مکاسب ایشون از بعد از مرحوم شیخ تا امروز از کتب عروف و مورد توجه حوزه های علمیه است برای پقه این مرحوم اهل دزفوله یک طلبه فقیر ضعیفی که از نظر مالی خیلی فقیر از نظر قیافه بد غیافه ظاهرم چشمشم تراخم گرفته یه زشتی خاصی پیدا کرده حوزه های علمیه ایران رو گشت زده کاشان پیش نراغین درس خونده مشهد و اصفهان حوزه های زمان رو میره نجفت یه طلبه ضعیف فقیر لباس پروسله قیافه مثلا غیر قابل توجهی که کسی هم نمی توی مدرسی چند تا پای درسش و اینا بحث می کنه مرحوم کوکمره این مرجع وقت آلم وقت در حد رئیس حوزه وقت میگه یه روزی من از مهمونی می خواستم بیام بیرون دیدم یه ساعتی وقت منده به درسم برم منزل و برگردم وقتم ضایع میشه تصمیم گرفتم برم تو مدرسه این ساعتو نشینم مطالعه میکنم تا شاگردا بیان درسو شروع کنیم رفتم دیدم یه طلبه یه گوشه نشسته یه چند تا طلبهم دورش دارن بحث میکنن یه من مشغول مطالعه شدم اما یواش یواش صدای اونا که به گوشم رسید دیدم عجب بحث علمی جانانه ای کتاب خودم رو مثلا طرح کنید بستم. خوب گوش دادم دیدم ایشون نسبت به این جلسه درس که من میشنوام از من مله‌تره ولی خوب شد یه جلسه اینجوری باشه فردا یک ساعت زودتر اومدم پس فردا چند روزی اومدم گوش دادم دیدم نه ایشون از من بهتر میفهمه از ایشون خواهش کردم شما تو این درسش دارید بله پیش‌دشته باشید کاری دارم یه طلبهی ظاهرا ناشناس همه شاگردا جمع شدند رفتم روی کرسی تدریس که نشستم گفتم آقایون از امروز به بعد جای من این آقا تدریس میکنم چون ایشون از من ملاتره من این پست رو به بیشون برگزار کردم خودم میام تو مستمعین میشینم شیخ انصاری رو فرستاد بالای کرسی تدریس خودش اومد پایین نشست مگر نفس یعنی این مجنون که میخواد سر از خانه لیلی در بیاره اگر در بند شطور تعلقات مادی باشه به اینجاها میرسه بد اطلا هم, هم زکاها هر یک از ماها برادر و خواهر، این شطور در گذرگاه های گوناگون، عجیب ما رو تو طویله گوناگون مادیات میبره که قدرت دارد و می که این قدرت رو بیابد که این انان شطور نفس را یعنی هوای نفس را اون در دست بگیرد و بگوید من یه منزلی سراغ دارم تا به اون منزل نرسم آرامش نمییابم معنای تزکیه نفس اینجا این میشه نفسی که میتواند آوج بگیرد پرواز کند سر از عالم معنا درآورد در این گذرگاههای گوناگون تعلقات مادی سریفتی شود و درجا زند تذکیه نفس یعنی از این دفندازا درش بیاریم از این پوچاله افتادنها نجاتش بدیم اگر داریم حرکت میکنیم به سوی اون مقصود و اون هدف پیش بریم قال علی یون علیه السلام حالا از زبان معصومین علیه السلام، اشجا اون ناس من قلب هواهو شجاعترین انسانها اون کسی است که بر هوای نفسش بلبه پیدا کند هوای نفسو جلسه قبل اشاره کردم یادآوری میکنم نفس بر مبنای ذاتش بر مبنای اصلش بر مبنای اون بعد الهی وجودش کیو میخواد خدا را یرجو جولغا ربه لقاء رب رو میخواد قانع به چیز دیگر هم نمی شود دعای ابو حمزه تکه هایی شو علامت گذشتم الله در ادامه بحثمون شاهد از دعای ابی حمزه امام سجاد علیه سلام براتون بخونم که امام چگونه به ما درس میده نیمه شب تو اون خلوت یکی از لحظات ارزنده برای ما نیمه های شده ماه رمضان، نیمه های شب رمضان، دیگه معلومه که چه ارزشی داره اون اگر امام علیه السلام این رو به عنوان یکی از مناجات های ارزنده نمی به این طولانی که بیان نمیکرد، این نشون میده که در اون لحظات اصلاف سهر یکی از بهترین شکل ارز زدن با خدا اینه اون وقت فرازی از فرموده های امام حالا اشاره میکنم که بعد متن رو بخونم خدا یا از تو تو را میخواه یکی از دوستان ما یه مثالی میزد مثال خوبی بود گفت مسافرتی بودم خارج از ایران یه کمی مسافرت ما طول کشید دختر بچی کم سن نسالی داشتم خب دختر هم علاقه وابستگیشون به پدرها بیشتره گاهی که زنگ میزدم این دختر گوشی رو برمیداشت گفت بابا کی میای؟ گفتم که می‌خواستم کار داشتم یه چند روزی امالا طول بکشه کارم انجام بدم بیام می‌خواستم دختر رو دروغ هم نمی‌خواستم بگم واقعیت بود می‌خواستم آرامشش بدم گفتم بابا جون اسباب بازیای خوبی اینجا دیدم لباسای قشنگی دیدم چند روز دیگه باشم نیست بابا ازیار هم می‌خرم این لباسا رو برات میام حالا انشالله که ناراحت نیستی این دختر چه جواب به من گفت جون زودتر بیا خودت میخوام اونا می‌خوام اونارو نمی‌خوام و اسباب بازیارو نمی‌خوام اون لباسا رو نمی‌خوام خودتون می‌خوام که خدمت امام صادق علیه السلام رسید خدای تو را و عظمتت قسمت میدیم در این ماه مبارک رمضان معرفت بندگی به ما انایت فرما معرفت ارتباط با اولیایت آشتی با خودت و امام زمانت به ما انایت بفرما رسید خدمت امام صادق علیه السلام کرد که یبنه رسول الله نز مالیم بده مشکلاتی داره گرفتارم حضرت پرمودن بشین حالا مثلا فرض کنه در نقلب معنا به قول خودم حالا مهم نیست تعملش داشته باشه نشه از خدمت حضرت. در این بین یکی دیگه از را آیت آید رسول الله گرفتارم مشکل مالی دارم حضرت یکی به صدا زد که این مقدار امکانات جور کن بیا بزن جور کردن به این دادن این رفت این شیعه چینکه کمی احساف دل مثلا کسالتی یا افسردگی کرد چی شد من با اغاار کردم اقا به من چیزی مرح نکردم او از را رسی اما تحمل کرد چندی بعد کسی دیگه از راه رسیم <تصفح> اقا گرفتها مشکل دارم حذت فرمون مشکل شهل کن ب هم یه چیزی داد اوره این دیگه تحمل نکرد. اقا ما از دوستان شما ایم از شیعان شما ایم اداتتمند شما ایم چرا آان خدمت تون می شما خواستیم به ما فرموی بشین چیزی داریی به او دادی. فرمود میخواستی بهت بدم تو هم بری می‌خواستم پلوم باشی حالا می‌خوای بهت بدم زود بری یا می‌خوای پیشم باشی گفت نه نه نه حالا فهمیدم یعنی یا یه آقایی بود این رکاب اسب عنوان اسب امام صادق علیه السلام رو به دست می‌گرفت یک متملی یه ثروتمندی برای حج اومد مکه و اومد مدینه و قریب نقل و معنی عرض می کنم که تو زینامه این آقا رو دید که خب این میاد رکاب امام صادق رو میگیره آقا رو سوار میکنه نگه میده رو آقا رو پیاده میکنه این که امام رو به اندازه فهم شناخته خدمت به امام رو میفهمه یعنی چی اومد به این آقا گفت که چقدر بد بدم این پستتو به من بدی هر چی میخوای بد میدم من ثروتمندم متمولم حالا نمیدونم اون چند روزی که اونجا بود برای اون چند روز گفته یا برای تمام و عمرش نمیدونم شاید هم مثلا برای اون چند روز بوده گفت نه خیر نمیدم امام صادق علیه السلام تشوا آوردن به امام از کرد که آقا به این میگم که این مبلغ بده میدم این رو بده به من ایشون میگه که دنیا رو من بدی این نمیدم اینا چی دیده بودن یه نمونه دیگه بگم گفت مدتی در مدینه باران نمیبارید یه روز دیدم که من تو مزرعهام بودم داشتم کار میکردم یه اده اومدن تو بیابون دعا کردن رفتن ناله زدن چیزی پیدا نشد یه قلام سیاه چهره زرد لاغر یه حالت خاصی داره اومد یه واشکی بعد ازی که جمعیت اومد دعا کرد رفت که تنها اومد رفت تو بیابون نمادی خون و سرش رو به سجده گذاشت. گفت خدایا تو رو به حقی که بر من داری و به حقی که بر تو داریم حرف. باران رحمتت رو بر این بندگان به باران این قلام تا بلند شد باران شروع کرد باریده این آقا میگه دنبالش رفتن دیدم از قلامان امام سجاد علیه السلام رفتم خدمت امام سجاد علیه السلام تم آقا من یکی از قلامان شما رو میخوام به هر قیمتی هم خواستید میدن حضرت همود کدومی شو میخواید که فرزدق در اون شعری که برای امام سجاد داره میگه اگه لا در لا اله الا الله نبود لا از زبان شما کسی نمیشنید شما کسی نیستید و مردم لا بگید ایام دعا و توسل این هاشیرم بگم انشالله تو مناجات های نیمه شباتون یادتون نره بعد برگردم که یکی از غلامان امام سجاد خطایی ازش فرزده بود امام بنابه حکمتی خواستن تنبیهش کنن این جوان فرار کرد امام پشترشون اومدن حالا چقدر فاصله افتاده بود، گرم بود، اومده بود، یه گوشه خوابش برده بود. امام وقتی رسیدن دیدن این خوابیده ولی آفتابه. آقا عواشون رو بالا سرشون گرفتن که آفتاب وضیحتشون نکن. نشستم و این عبار رو گرفتن تا این از خواب بیدار شد. وقتی بیدار شد، دید امام عبار رو گرفته بالا سرش سایه شروع کرد به گریه کردن. گوه آقا شما میخواستید منو تنبیه کنید. اما وقتی دیدید من تو آفتابم سایه برای من گرفتید حضرت فرمود دیدم ترسیدی گو آقا حالا میخوای تنبیه کنی من آمادم حضرت فرمودن نه آزادت کردم در راه خدا گو آلا آزاد کنی کجا برم گر برکنم دل از کب و بردارم از تو مه این دل کجا برم و این مه برکرد کنم میگیم یا امام زمان ما من قلامان فراری هستیم که از گناهمون میترس شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیه در این ماه رمضان یه دست عنایتی یه گوشه چشمی یه مرحمتی هم به ما بفرما ما این معنا در دل ما جا بگیره که بکیم ما از در خانه شما دیگه به جای دیگه نمیریم تازیانه میزنی بزن شلاق به ما میزنی بزن سیلی به صورت ما میزنی بزن ولی در خانه تو به روی ما نبنده، در خانه رو باز بگذار گفت به امام سجاد گفت آقا من یکی از غلامان شما رو میخوام آقا فرمود کدومش گفت نمیدونم فرمود این برده ها رو حاضر کنی تو پرانتز بگم حضرت اینا چون بردهداری هنوز ملغا نشده بود اینا رو میخلیدن می آوردن منزل تعلیمشون میدادن آزاد میکردن حضرت دستگاه بردهداری نداشته تعلیم دیده ها رو رها میکرد یه تعلیم دیدش اینه که اینا هر کدوم هر کجا میرفتن جمعیتی رو منقلب می‌کردن می کردن. شدن و چراقی که نور می‌دادن این ادعا حاضر شدند این نگاه کرد نگاه کرد نگاه کرد گفت نه آقا اینا هیچ کدوم نیست حضرت پرسیدن گفت یکی دیگه هم هست یک کارای خیلی مثلا پیش افتاد حضرت فرمود اونم بگید بیاد اونو گفتن اومد وقتی اومد گفت همینه اینو می‌خوام حضرت فرمود بخشیدمت بخشید وقتی از در خانه حضرت اومد بیرون رو کرد به این آقا من چه بدی در حق تو کرده بودم منو از آقام جدا کردی منو از در خانه مولام جدا کردی چرا نداشتی پیش مولام باشم؟ گفت نه من دیدم توی همچون تو مناجاتی کردی گف فهمیدی گفت بله قیده دو کن. کن درکت نماز خوند سرشو گذاشت به سجده گفت خدایا تو رو به حقیقت و کی دیگه جان منو بستان میگه لحظاتی بعد دیدم که این غلام جان به جان تسلیم کرده. یه غلامه اومده در خانه امام سجاد. خدا میگه بشر نفس رو شما داده. درید در خانه امام زمان. درید در خانه امیرالمؤمنین. بریم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقتی رفتیم یعنی حالا در مثل مناقشه نیست من اینجوری ارج کنم. یعنی <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> اگر به سمت خانه مجنون در حال به سمت خانه لیلی در حال حرکتین یک جازبه های گوناگون ما رو بر جوان عزیز یه نگاه نامحرم تو رو از امام زمان جدا نکنم خواهرم یک بی در حجاب تو از در خانه حضرت زهرا جدا نکنا مادرم یک سستی در حق تربیت بچه ها باعث محرومیت از حریم انایت زینب کورا نکنه شما رو حاج آقا، بازاری کارمند دانشگاهی یک تعلق مادی را از انجام وظیفت باز نداره و با. این بازداشتنها باعث میشه که از اون در خانه جدا بشیم از اون در خانه که جدا شدیم، این شطور ما را میکشد و در چاله ها و چاهیاندازد هر که دست میندازیم از این چاه بیایم بالا میبینیم خدا یا راهی نداریم مگر امام صادق فرمود تو و تو حبل الله تو ریسمان الهی است یه ریسمان خدا انداخته تو این چاه میگه میخواید بگیری بیا بالا اون توبه است ماه رمضان وقت شه. شبای جمعه وقت بشه شبهای قدر وقت شه. که بیایم آشتی کنیم و برگردیم پس اش جؤن ناف من غلبه هواهو شجاعترین شجاع انسان ها اون کسی که به تعبیر اون مثال اگر این شطور هوای نفس میخواد این مجنون عاشق لیلی لغاه الهی را توی این گودال ها بندازه میگه نه نه نه برو این دام بر مرغ دگرنه که را بلند از آشیانه اونقدر توجب لیلی داره اگر یک ذره امروز در مسیر حرکت به سوی خانه لیلی چشمش به این ورون و شب گریه میکنه میگه وای مرا ببین که دم از لیلی میذدم جاذبه های دیگه منو به خودش مشغول کرد حالا امام صادق علیه السلام چه درسی دادند کتاب کافی جلد دو صفحه سی و, سی و شش حدیث چهار کان ابو عبدالله علیه السلام یقول اصلا اینجوری بود نه یه بار کان یقول معمولا امام صادق علیه السلام این رو تذکر می دادن. لا تدع النفس و هواها نفستون راها نکنید با هواش یعنی چی؟ این لا نفس راها نکنید اون چی بنده استنباط می کنم به اندازه فهم ناقصم و هواها دو مطلب ازش به نظرم می رسه یک قسمت منهای هوای نفس یعنی آقا یک سرمایه یک گوهر یک گنج از در دست شماست حالا مثال از خودم بزنم توهین به شما نبشه در دست منه از فقر مینالو از ناداری فریاد برمیآورم. شمایی که میدونید چه گنجی من دارم که آقا جون چرا گنجی تو راه کردی؟ چرا سرمایت ندیده گرفتی؟ چرا این مایه گرونبه که در اختیارته قدرشون نمیدونی؟ آقا اونایی که زنده شدن نفس را با گریه شب فهمیدند رشد نفس را با روزه شناختند تعالی نفس را با سردخاک نهادن نیمه های شب فهمیدند انتظار میبرند که نیمه های شب برسه چرا من وقت نماز شب بیدارم میشم حال نماز شب ندارم اما کسی بیدار میشه میبینه از آن صبح دارن میگن زار زار اشک میریزم رنگ چهرش اینا رو من گوه اگر نیستن دیدم زار زار اشک میریزه چهره زرد صبح کی شد آقا یک سرمایه از دستم رهد یک سفر حالا من به اندازه چه بکنم این مثال هایی که توی عالم میخوام بزنم ببینید یه مثال مادی بزنم یه مثال یه مقداری معنوی تو همین عالم قدردانی برای رحانه کنید قدرشو به دانی مثلا فرض کنید برای جوانای دانش آموز ما در سال چهارم شرکت در کنکور به اندازه این عالم مادی الان مشغول کار تلاش میخونه میخونه میخونه رنج میبره تا روز کنکور روز کنکور که حالا میخواد بره میگه آقای فرصت از دست ندیده این مهلت رو فراموش نکنیم قدر این وقت رو بدونیم ویلکن آقا ویلکن غروب روز کنکور که شد یه دفعه به خودش میاد ای، تا سال دیگه کار نمیتونم بکنم نخ یه سال دیگه یه سال دیگه رفت. لحظه مرک حتی ضا جااء هد الموت قال رب حالرب برجونی لهلی عمل و سال هم پیمما ترک و، کلا کلمه هو و گاه اللا ها و من وای هم بر میگه خدایا قرآ سر مؤمنون آی نوود به بعد. وقتی مرگ یک انسان فرا میرسه یه دفعه متوجه میشه بلا تشویر شاگردی که غروه کنکور شد ا گذشت تا یه سال دیگه. قرآن میگه وقتی مرگ یک انسان میرسه یه دفعه بیدار میشه قال میگه رب به خدای من ارجعونی منو برگردم یه عمر دیگه بشه لعلی اعمل و صالحن فیما ترکتو برگردم جبران کنم کلا کلمه نه دیگه تمومش من ورائم برزخ اله یوم یوب حالا این کنکور مثال زدم بذارید یه مثال وصل ایش نسول ایش تو عالم معنا عرض کنم فرض بفرمایید از این در دکنا زیاد شده گول نخوریدا یه از مثال منم اون سوء استفاده نشه خدای نکرده من مثال دارم میزنم <تصفح> از طریقی یقین پیدا کنیم که امثال کسانی که در این محدوده از عرفات در روز عرفه قرار بگیرن توفیق ملاقات امام زمان پیدا میکنن از که مثال می‌زنم. برای کسی که ارزش ملاقات امام زمان و انایت حضرت رو میفهمه میگه آقا اتفاقا امسال برای من امکان حج رفتنم هست حج میره عمرش هم به جا میاره روز عرفه به عرفات میاد میاد اون مکان هم میبینه بعد میبینه که چادرای اون مکان یه کمی ناجوره هنکه زیرش نیست کولر ویرش نیست کلمنای نیست. اما اون طرف سر چادراییه که قالی داره، پنکه داره، کولر داره، کلمن داره. میگه من رفتم اون وقت، میرم اونور. اینایی که اینجان، میگه آقا فرششم ببرید. اگه آب گرمی هم هست، میخواهید ببرید، ببرید. بذارید تو همین ها من بشینم. من امروز تا غروب اینجا باشم، شاید الهایتی شامل حال من بشین اون آیی که از اینجا رفت، وقتی غروب شد، آفتاب رفت، تازه به خودش اومد، ای منو به گوچه کرده ای چجور تو سر خودش میزنه ما در این عالم آقا نفس را رها نکنی یه معناش اینه میدونی چه گنجی دارید شما شما با این نفستون اون غلام سیاه امام سجاد یه انسان بود چه آر سبابا امام سجاد بود به کجا رسید شما با ارتباط امام اصل در خانه امام زمان سرسودن و دست با دامن فاطمه زهرا آویختن نیدون جایی که باید برید نفس راها نکنید اما هواها اینم داره همین نفس یعنی روحی که متعلق به بدن شده در وابستگی مادی تعلقات مادی هم پیدا میکنه رها نکنی هوای نفسشا یعنی الان داره آه یه کمی وسوسه ایجاد میشه نگاه کن رهاش نکن جلوشو بگیر امروز با یه نگاه جلوشو نگرفتی فردا یه گام برمیداری فردا با یک گام برداشتن جلوشو نگرفتی چهار قدم میری پس فردا با چهار قدم رفتن جلوشو نگرفتی رفتی در محیط گناه وقتی تو محیط گناه رفتی نفس تو این سرازیری یخبندان سر وقتی سرخرد مندنش دیگه مشکله امام صادق میفرماید لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها همانا هوای نفس به کلام امام امام الکلام همانا هوای نفس باعث نابودی نفس هست امام یعنی این نفسی که اون قلام سیاه رو به اونجا میرسونه سلمان رو به اونجا میرسونه همین نفس در اثر گرایش باشتر رفتن تو طویله با اون مثال نابود شد و ترک نفسه و ما تحوی آزاها و کف نفسه اما تحوی دواؤها نفس رها کنید با اون هوایی که توشه این باعث عذیته این باعث آزاره این باعث بیچارگیه نگهداری نفس اما تحوی از اون چه که باعث حواث دواؤها دواشه یعنی درد نفس هوای نفس دوای درد نفس نگهداری نفس دو تا حدیث بخونم یک لولا ان شیاطین یه علی قلوب بنی آدم لنظرو الى ملکوت سماوات اگر این شیطنت ها دور قلب ما رو نگرفته بود که مثال توضیح دادم این قلب با نیشتر عشق بر رگ روح زدم یک قطره چکید از آن و نامش دل شد این دلی که یه قطره از نفسه این دل خیلی کارا میتونه بکنه ما رو به خیئی جاها میتونه برسونه که انشالله بحثش رو در شب‌های بد خواهیم داشت بیاری خدا حالا این دل اگر شیاطین دورشو نگیرن این شیطنت ها رو نگیره لا نظر و السماوات تو عالم بالا رو میبینه مثل اون غلام این غلام کجا رو دیده حالا حدیث دیگر از پیغمبر اسلام فرمودند ان شیطان همانا بدانید که شیطان یجري ابن آدم مجرد دم جرایان مییابه نفوذ میکنه حرکت میکنه میاد تو وجود انسان مثل رگی که تو خونا رفته ببینید مویرک چقدر باریکه خون تو اونم نفوظ میکنه شیطان اینجوری میتونه تو وجود شما نفوذ کنه شیطان ببینید لولا انا شیاطین اگر نباشد این شیطانت ها که بر دل انسان دور دل انجحمون علا قلوب بنی آدم لنظر نظر الی ملکوت السماوات اما این شیطنت حالا میخواد نفوذ کنه مثل اون خونی که توی مورگ هم میتونه بره تو وجود شما میتونه بره خب حالا چه بکنید صد دو مجاریح با روزه راه نفوذش رو ببندی فقط با اشاره بحث امشب هم کافی باشه چون یکی از عوامل لاگسه شهوت شکمه. گرسنگی و روزه یک عامل از که آقای کمی واسا آ گرسنمه خب باشه مگه هرچی دلخاست بود انجام بدی آقا تچنه خب ننوش جلوشو بگیر همین قدرت ایستادگان در مقابل هوای نفس دیگه لذا گفتن آقا اگه شرایط جسمیتون اجازه میده اکتفای به روزه فقط ماه رمضان نکنید روزه مستحبی بگیری. و یکی از بزرگان از ایشون اجازه گرفتم این نقل و کنم اینو نقل کنم گفتم که برخی مقیداً اگه ناراحتی جسمی دارن ماه رمضان نمیتونن روزه بگیرن مخالفت به صورت خوردن غذاهای بدمزه جبران کنن حالا من عضو شرعی دارم روزه نمیتونم بگیرم آقا امروز چی میل دارید میخوام با میلم مبارزه کنم استادی می گفت صبح از در خونه خارج میشدم گفت چی میل داری گفتم قرمه سبزی برگشتم خانومم سرزی پخته بود و رو سفره گذاشته بود خیلیم گرسنه میل هم میکشی ولی تورا با خودم فکر کردم بیچاره هنوز گرفتار میلی بهتر نبود بگی خب هرچی شد می‌خوریم لذا زحمت خواستم مبارزه کنم اول به خانوم گفتم زحمت شما رو قدر می‌دونم اگر من نمی‌خورم نه اینکه قدر خوام خودم خودمو آدم کنم آیا یه مقدار نون خشک امروز برای من بیار می‌خوام نون خشک خالی بخور. بله زحمت داره آقا یه مقدار اولش ولی که من از یه قدا نمیتونم بنده کسی رو میشناختم که در عمرش در هر سفره‌ای نشست از یک رنگ غذا بیشتر، اونی که دوش بود غیر از اون نخورد. گاهی به جوونا با هم میشینیم میگم بیاد امتحان کنید. ما خیلی وقتا آقا سیر و سلوک می‌خویم، آقا مسیر تکامل معنوی میخواد. گفتم از اینجا شروع کنید آقا، از امروز تا یک ماه. هر سفره‌ای روش نشستید از یک رنگ غذا بیشتر نخورید. کسی نگفته دوران گوه خوریه حراما، توجه دارم. ولی من میخوام جلو میلم بگیرم حالا ببینید شیطان چه میکنه آقا زحمت کشیدم رد احسان است قدر زحمت مردم رو کادم چنین و چنان ببینید نفس چه میکنه لذا یک خود شهوت شکم از اینجا شروع کنیم دو شهوت جنسی مربوط به شهوت شکم بحثش رو بد میکنه جوان برای کنترل شهوت جنسیش روز زیاد بگیره این روزه و این گرسنه ندارن تن پروران آگهی که پر معده باشد حکمت تهی از امام صادق علیه السلام انشاءالله در ادامه بحثا ارز خواهم کرد امام صادق می فرماید اگه بکاتون کم شده روزه بگیرید الله اکبر اگه بکاتون کم شده روزه بگیرید اگه حال مناجاتون کم شده روزه بگیرید شیعه اما روزی که آقا کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع و الظما کم من قائم لیس له من قيامه الا السهر و العناء یک مناجات کننده حقیقی در این عالم وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام نمیدونم خدا شاهد هم اون هفته بی اختیار خواب به مناسبت توبه رفتیم در خانه جناب خور این هستم نمیدونم چی شد که دلم میخواد از علی بگم. این مناجات کنندهی که میگه اومد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیه ها تو مدینه در زر. بی بی جون علی رو دیدم تو نخلستان های مدینه تشبیه میکنه مثل ماهی که از دریا میگیرید میخواد جون بده چجوری عرکت میکنه علی اینجوری می لرزید مثل اینکه حالش بده علی رو در یابید علامه نقل زهرا سلام الله علیه ها فرموده باشن اون حال مناجات علیه در سهر بیستون رمضان، امیر المؤمنین علیه السلام فرموده باشند، بستر منو بیارید تو حیات بستر آقا رو آوردن تو حیات یه چشمی به آسمان انداخت فرمود ای محتاب یاد داری تا حالا این موقع شب علی رو در بستر دیده باشی چه می کرد علی این موقع شب شیعه علی هستیم پیرو علی هستیم خدا تو رو به فرق شکافته علی قسمت میدهیم لذت مناجات عشق چشم سوز دل آه سینه به ما انایت بفرماد ما وقت چگونه ناله علی میکرد وقتی که شنیده اید اینا شنیدنش باز تحول و تذکرش باعث بیداری دل انشاءالله میشه گفت ما از دفن امیرالمؤمنین علیه السلام برمیگشتیم. از کنار خرابه عبور میکردیم صدای ناله پیر مردی به گوش آمد آقای امام حسن و آقای مام حسین وارد خرابه شدند. دیدن یک پیرمرد نابینا ایمیناله پدرجان چه شده ناله میکنی آقا آقایی بود به من سر میزد قضا برام می آورد نوازشم میکرد نمیدونم چه گناهی از من سر زده که سه شب دیگه سری به من نزده و من از فراق او می نالدم آقای ما مجتبی فرسیدم پدرجان چه نشانی داشتون آقا آقا جون من که چش ندارم دیده باشم ولی انقدر میدونم وقتی غذا میابون سر من رو به دامن میگیره. یه دست نوازشی به سرم میکشی یه مقدار از این غذا به من میخورم بعد به من میفرمود مشغول غذا بشو او مشغول مناجات میشد وقتی راز و نیاز میکرد این در و دیوار با او هم صدا میشده امام حسن فرموده بایشان پیر پیرمرد او بابای ما علی بود و ما الان از دفن او برمیگردیم